کسی که از شاه سابق حراسی در دل به خود راه نمیداد و با خیل تاش آنطور رفتار می کرد، مرعوب نمی شد. مرعوب هم نشد. به طوری که بالاخره در تبعید جان داد. شاید هم کشته شد. چنین مردی چطور ممکن است اسیر چشمهای چشم های زنی شده باشد؟ من از همان روز اول که به فکر نوشتن تاریخ زندگی نقاش بزرگ ایران افتادم یقین کردم تا آن زن ناشناس صاحب چشمهای پرده پیدا نشود آنچه من میتوانم بنویسم همین است که در روزنامه ها نوشته شده است من اساد شهبانی را هم خواندم. آنجا هم هیچ اثری نیست حتی تبعید او هم به دستور شفاهی سرتیب آرام بوده و او هم که در ایران نیست و به روایتی در آمریکای جنوبی زندگی ای برای خود ترتیب داده است من به تفصیل از رابطه استاد با خیلتاش گفتگو کردم قصم بود که نشاندم که خیلتاش نیرومندترین رجل ایران در آن دوران و یا اقلن پس از رضا شاه مقتدر ترین مرد این کشور او هم مجبور بود که احترامات استاد را رعایت کند نباید تصور کرد که رجال دوران دیکتاتوری هنر پرور بودند و مقصود خیلتاش قددانی از صاحبان کمال بود مقصود من احترام و نفوذی است که استاد نقاش در مردم فهمیده داشت خیلتاش با سلام به استاد در مجالس رسمی برای خود کسب وچه می میکرد در آن دوران هنوز پایههای و استوار نشده بود هنوز در دستگاه سلطنت ایران عناصری مانند خود خیلتاش پیدا میشدند که هر هرگونه خفتی را تحمل نمیکردند هنوز در اطراف کشور انصار یاقی و تاقی امیدواری هایی داشتند. هنوز عناصر منفرد و یا جمع کوچکی گاه به گاه پیدا می شدند که دست از ایستادگی نکشیده بودند. هنوز اشخاصی مهند استاد وجود داشتند که در برابر ستمگری و تعدی به حقوق مردم آماده جان فشانی بودند. خیلتاش میخواست بدین بدیم وسیله خود را تبرئه کند. به علاوه وجود استاد وسیلهای برای تبلیغ تازه به دوران رسیده های آن اصر بود. هر کس را که از خارج به ایران می بدیل به دیدن آثار استاد می بردند و یک تاجر عتیقه فروش آمریکایی که خود را هنرشناس و پروفسور هنرهای زیبا جا زده بود با خرید تصاویری که استاد برای یک مجموعه رباعیات خیام ساخته بود ثروت هنگفتی به جیب زد و در این حال داستانها از هنرپروری رژیم ایران، در اروپا و آمریکا نقل کرد یک عکس استاد که روی صندلی راحتی نشسته و دارد با بچه های آقا رجب شوخی می کند در مجله های آمریکایی منتشر شد گذشته از هنر نقاشی برنده ترین که در دست استاد بود بی او به قیود و آداب اجتماعی بود خانوادش را که اصلا مازندرانی بودند به کلی ترک کرده بود در خانه نسبتاً بزرگی پشت مسجد سپهسالار سالار منزل داشت. خانه بدی به نظر نمی آمد. درخهای بلند چنار و انار و شمشاد. در تابستان دور حوز سایه مطبوعی میانداختند و اول بهار اطل گل سرخ گزداد در قدرهای بزرگ جامیداد تازگی و تراوت هوا را حتی در آتیلیه خفه و تاریک او هم منعکس می‌کرد. استاد با فروش پرده های نقاشی به اعیان عواید خوبی کسب می کرد اما هرچه داشت و نداشت توسط آقا رجب خرج می شد. ارچه خودش به تجمعات زندگی کمتر علاقه داشت اما می کوشید که زندگی آقا رجب و بچه های او را که یکی از آنها در آن ایام قبل از طبید استاد به کلات دوازده ساله بود مرفه تر تأمین کند. دو تا بچه آقا رجب را ماند بچه های خودش می دانست. تا اما که در قلبش بود برای آنها صرف میکرد به خاطر آنها از آنچه از دستش برمیآمد کوتاهی نمیکرد. نمی کرد. از با بازی های فیروز پسر بچه آقا رجب کمتر از آنچه در اختیار یک بچه خانواده متوسط است نبود فیروز را به دبیرستان فرستاده بود و رفتار این پسر بچه با همشاگردیهایش هایش مانند رفتار پسر آقا رجب نبود مع زندگی خودش در سه اتاق می‌گذرش یکی از آنها کارگاهش بود انباشته از تابلوهای گوناگون و هایی به زبان فرانسه ایتالیایی و چارچوب و رنگ و مقوا و توال و چارپایه و لوازم دیگر یک کارگاه نقاشی اغلب در همین اتاق غذا می‌خورد گاهی هم همانجا روی یک تخته چوبی می‌خوابید در اتاق دیگر از دوستانش پذیرایی می‌کرد اتاق سوم ک اتاب خوابش نامیده میشد مملو از تابلو کتاب بود در این اتاق معمولا کارهایی را که نمیخواست به کسی نشان بدهد پنهان میکرد آقا رجب میگوید که گاهی در شبهای تابستان موقعی که آسمان نیلگون و جواهر نشان بود روی بام میرفت و آخر شب مدت ها پس از آنکه آقا رجب و زنش در خواب غرق شده بودند آهسته پایین میآمد و تخت خواب سفری را از کارگاه نقاشی برمیداشتو روی بام می رفت و آنجا دراز می کشید. در این گونه مواقع تا سحر بیدار می ماند و آفتاب که تیغ می زد تخر را پایین می و تر کارگاهش که در تابستان گم و خفه بود می خوابید خاطرات آقا رجب همین خاطرات گسسته که از زبان مرد توداری باید بیرون آید تنها تسکره است که از زندگانی این مرد عجیب می توان ترتیب داد بعد وقتا نه آقا رجب. مردی آمی و بی سواد است. مثلا او نمیداند که استاد تابلوهای گوناگون را در چه سالهای کشید و تنها کلیدی که برای گشودن راز زندگانی او وجود دارد بی اثر می شود. یا اگر میداند داند خاطره گستستو و بار است. مثلا می گوید همان سادی که آن آقای قد بلند محصولش خیلتاش است. پیش آقا میامد تابلو تابلای دورگرد ها را ساخته است. و یا همان وقتها که، مستر آمریکایی از است. استاد تابلو می‌خرید؟ نه، یک سال پس از آن زن ناشناس مدل مینشست و یا وقتی که پسر دوم او را به مدرسه فرستادند، تری از او در حالی که زیر درخت افتاده و خابیده بود کشیده است. با وجود این آغ رجب دانته از آن حدیث که جلوه می‌دهد، من نمیتوانم تصور کنم که استاد میتوانسته است ده سال و بلکه بیشتر پوچ این مرد ابلهی زندگی کند. بنابراین اگر سری در کار استاد باشد این دهقان همدانی هم از آن باخبر است. منطقه من از خود میپرسم چرا به کسی چیزی نمی‌گوید. چقدر سعی کردم مطلب ولو ول و مختصر درباره زن ناشناس که بر قیده من چشهای مرموز باید از آن او او باشد از این آقا رجب بدست آورم. نمی‌داند از یادش رفته. به خاطر ندارد که استاد آن پرده را تمام کرده یا نه نمیداند که این زن چه سنی داشته یادش نیست که خوشگل بود یا نه فراموشش شده که چند مدت میآمد و میرفت این را میداند که استاد وقتی کارش تمام میشد او را به خانه میرسند تو هیچ وقت به خانه این زن نرفتی؟ نه یادم نیست فکر کن بلکه خانهش به یادت بیاید یادم نیست پرده که آقا از این زن کشیده یادت هست؟ نه آقا زن لخته بود؟ نه آقا دینایینش محکم بود میدانم اما آقا آخر زنهای لخت هم کشیده است بله آنها را آقا در فرنگستان کشیده اینجا از این جور پرده ها ندارد من که ندیدم چه میگوی آقا رجب بعضی از این زنهای لخت صورت دختران ایرانی را دارند چطور میشد آقا رجب را قانه کرد؟ او باور نمیکرد آقایش را مجسم پرهیز کاری و پاک دلی می میدانست و عقیده داشت که ارتکاب به هر آنچه به نظرش خلاف دین و درستی بود از عهده اربابش بر نمیآمد آقا رجب آقایی برای خودش ساخته و هیچ ممکن نیست واقعیت زندگی استاد را از این مرد درآورد مکرر سعی کردم که پرده چشمهایش و اهمیتی را که این تابلو دارد برای آقا رجب روشن کنم کوشیدم به او بگویم که چه رمزی باید در این پرده نهفته باشد. موضوع فقط زبردستی استاد در جلوگر ساختن این چشمهای مرموز با حالات گوناگون و معانی جورواجور جور نیست. می‌خواستم به او حالی کنم که با کشف مذهبی که چشمهایش بیان می‌کند، می‌توان به یک نکته اساسی که در زندگی استاد پنهان است و برای معاصرین دانستن آن ضروری و سودمند است، پی برد. بالاخره معلوم نیست چه شد که استاد را از تهران تبعید کردند به چه دلیل او را به کلات فرستادند چه کرده بود رئیس نظمی فراری گفته بود که به او دستور قطع نقاش را داده بودند برای چه میخواستم رجب این نکته را حالی کنم که اگر ما بفهمیم آن زن ناشناسی که در آخرین روزهای اقامت استاد در تهران به او آمدو شد داشته و مدتی مدل نشسته است کی بود شاید بتوانیم بفهمیم که چرا استاد را تبعید کردند شاید معلوم شود که او را در کداد کشند. بالاخره اینها برای مردم لازم است دانستن این نکات برای نسل رزجوی, رزجوی امروز سودمند است مرد لجوجی است این آقا رجب نمیتوانم باور کنم آدمی که شاید دوازده سال بلکه بیشتر در خانه استاد زندگی کرد و همه کاره او بوده نداند که چرا استاد را گرفتند سالها در دفتر مدرسه نقاشی که امروز به نام استاد خوانده می شود من با این آقا رجب صحبت کردم و او خوب فهمیده که من چقدر علاقه به آشنایی با این زن ناشناس هستم آقا رجب با قیافه آرام حرفا را می شنود موجه نمی زند. در خصوص صورتش ادام و تعجب و شادی و غم و جهل دیده نمی شود گاهی انسان هم داشت از خود بپرسد که آیا این مرد آرام و متین است یا ابله و خرفت نمیشد فهمید که او حافظهاش سست است و یا اینکه مهر خاموشی بر لب زده هرچه از او میپرسیدی آرام و جا... متین جواب می‌داد. آره نه اما چشمش در عین حال گاهی برق میزد مثل اینکه دندان روی جگر میگذاشت و سؤال کننده را نامحرم میدانست اوی با کشف رازهای استاد به مقدسات توهین کرده است. در این آرامش که حالت استراب در وجود او میدولید و آقا رجب گویی میکوشید که پریشانی بر او غلبه نکند و نقابی که بر صورت زده بود نیفتد. گاهی حسده من سر میرفت و به خود میگفتم که خودش را به نفهمی میزند و هوشیارتر از آن حدیث که خود را جلوه میدهد. اینها همه به جای خود درست باید در نظر داشت که من در این مدرسه نقاشی اکنون از شهری ور به بعد نازم هستم و آقا رجب ناسلامتی فراش این مدرسه از زیر من است. چند روز پیش از اون میپرسم آقا رجب هیچ صورت این زن که مدل آقا بود به خاطرت نمی آید؟ چرا آقا؟ خب میتوانی بگویی که چه شکلی بود؟ بله تعجب کردم و از او پرسیدم چطور یک مرتبه صورتت؟ صورتش به خاطرت آمد در جواب من گفت برای اینکه چند روز پیش آمده بود اینجا. چه میگویی؟ آقا رجب اینجا چه کار داش؟ آقا جز چیها بود. چه روزی آمد اینجا؟ روز پنجشنبه بعد از ظهر. چرا پس به من نگفتی؟ ای آقا میخواهید چه کار کنید؟ خوب نیست وقتی زنی میآید یا های آقا رو تماشا کند من بیایم شما رو بیخودی خبر کنم. هفته های متبادی تمام روزهایی که موزه مدرسه برای تماشای عموم مردم باز است خودم تمام روز در حال موزه نشستم و به رجب در سور دادم به محض اینکه زن ناشناس آمد به من خبر دهد اما زن نیامد آن روز پنجشنبه کلی جوازهایی را که به نام واردین صادر شده بود بازدید دید کردم 15 نفر زن آمده بودند از میان آنها پنج زن تنها بودند و اسم هیچ کدام از آنها با اسامی خانوم ها دختران و آشنای استاد تطبیق نمیکرد از آن روز به بعد خودم دفتری ترتیب دادم و نام مراجعین موزه را ثبت کردم و عسامی پنج زنی را که تنها آمده بودند به خاطر سپردم فقط دی که از آنها اسم شخصی خودش را نوشته و نام خانوادگیش را پنهان کرده بود اسم این زن فرنگیس بود.